مثنوی معنوی مولوی برنامه 28ام آفتن پادشاه باز را به خانه کمپیر زن دین نه آن باز است کو از شهر گریخت سوی آن کمپیر کو می آرد بیخت تا که تتماج پزد اولاد را دید آن باز خوش خوشزاد را پایکش بست و پرش کوتاه کرد ناخونش ببرید و قوتش کاه کرد گفت نا اهلان نکردندت بساز پرف زود از حد و ناخون شد دراز دست هر نااهل بیمارت کند سوی مادر را که تیمارت کند مهر جاهل را چونین دان ای رفیق کجرود جاهل همیشه در طریق روز شه در جستجو بیگاه شد سوی آن کمپیر و آن خرگاه شد دید ناگه باز را در دود و گرد شه برو بگریست زار و نوحه کرد گفت هرچند این جزای کار توست که نباشی در وفای ما درست چون کنی از خلد زید و زخ فرار غافل از لایستوی به نار این سزای آنکه از شاه خبیر خیره بگریزد به خانه گندپیر باز می مالید پر بر دست شاه بی زبان می گفت من کردم گناه پس کجا زارد کجا نالت لعیم، گر تو نبزیری به جز نیک ای کریم. لطف شاه جان را جنایت جوه کند، زان که هر زشت را نیکو کند. رو مکن زشتی که نیکی های ما زشت آمد پیش آن زیبای ما. خدمت خود را سزا پنداشتی، تو لبای جرم از آن افراشتی. چون تو را ذکر و دعا دستور شد، زان دعا کردن دلت مغرور شد. همسخن دیدی تو خود را با خدا، ای بسا کوزین گمان افتد جدا، گرچه با تو شه نشیند بر زمین، خیشتن بشناس و نیکوتر نشین. باز گفت ای شه پو شایمان می شوم. توبه کردم، نو مسلمان می شوم. آن که تو مستش کنی و شیرگیر، گیر، گرز مستی کچ روید آزرش پذیر. گرچه ناخن رفت چون باشی مرا، برکنم من پرچم خورشید را. ورچه پرم رفت چون بنوازیم، چرخ بازی گم کند در بازیم گر کمر بخشیم که را برکنم گردهی کلک علمها بشکنم آخر از پشه نکم باشد تنم ملک نمرود به پر برهم زنم در ضعیفی تو مرا بابیل گیر هر یکی خسم مرا چون پیل گیر قدر فندق افگنم بندق حریق بندقم در فعل صد چون من جنیق موسی آمد در بقا با یک آساش زد بران فرعون و بر شمشیر هاش هر رسول یک تنه کاندر زده است بر همه آفاق تنها برزده است نوه چون شمشیر در خواهید از او موج طوفان گشت از او شمشیر خو احمدا خود کیست اسپاه زمین ماه بین برچرخ بشکافش جبین تا بداند سعد و نحس خبر دور توست این دور نه دور قمر دور توست ایراک موسای کلیم آرزو می برد زیندورت مقیم چونکه که موسا رونق دور تو دید کندرو صبح تجلی می دمید گفت یارب آن چه دوره رحمت است برگذشت از رحمت آنجا رویت است غطد موسای خود را در بهار از میان دوره احمد برار یا <سزنان> موسی بدان بنمودماد راه آن خلوت بدان بکشودمت که تو زان دوری در این دور ای کلیم پا بکش زیرا دراز است این گلیم من کریمم نان نمایم بندرا تا بگیریانت تمع آن زنده را بینی طفل بمالت مادره تا شود بیدار و واجویت خوره کو گرسنه خوفته باشد بی خبر واندوپستان می خلد زو مهردر کنتو کنزن رحمتا مخفیتن فبته استو امتا کراماتی که میجویی بجان، او نمودت تا تمع کردی در آن. چند بشک است احمد در جهان، تا که یارب گوی گشتند امتان. گر نبودی کوشش احمد تو هم میپرستیدی چو اجدادت سنم، این سرت وار است از سجده سنم تا بدانی حق او را بر گر بگوی شکر این رستن بگو که از باطن همت برهاند مر را چون رهانید از بطن هم بدان قوت تو دل را وارهان سر ز شکر دین از آن برتافتی کس پدر میراس مفتش یافتی مرد میراسی چه داند قدر مال رستم جان کند و مجان یافت زال چون بگیریانم بجوشد رحمتم آن خروشنده بنوشت نوشت گر نخواهم داد خود ننمایمش چونش کردم بسته دل بکشایمش رحمتم موقوف آن خوشگریه هاست چون گریست از بحر رحمت موج خواست خریدن شیخ احمد خزرویه جهت غریمان به الهام حق تعالی بود شیخ دائما او وامدار از جوانمردی که بود آن نامدار ده هزاران وام کردی از مهان خرج کردی بر فقیران جهان هم به خانقاه ساخته جان و مال و خانقه در باخته وام او را حق زهر جا می گذارد کرد حق بهر خلیل از ریگ آرد گفت پیغمبر که در بازارها دو فرشته می کنند ای در دعا که ای خدا تو منفقان را ده خلف ای خدا تو ممسکان را ده تلف خاص آن منفق که جان انفاق کرد حلق خود قربانی خلاق کرد حلق پیش آورد اسماعیل وار کارد بر حلقش نیارت کرد کار پس شهیدان زنده زین رویند و خش تو بدان قالب به من گر گبر وش. چون خلف دادستشان جان بقا، جان ایمن از غم و رنج و شقا. شیخ وامی سالها این کار کرد. می ستد همچون پای مرد. تغمها می کاشت تا روز عجل تا بود روز عجل میر عجل. چون که عمر شیخ در آخر رسید، در وجود خود، نشان مرگ دید، وامداران گرد او بنشسته جم، شیخ بر خود خوش گدازان همچو شم. وامداران گشته نومید و ترش، درد دلها یار شد با درد شش. شیخ گفت این بدگمانان را نگر، نیست حق را چهارصد دینار زر، کودک ز بیرون بانگ زد لاف حلوا بر امید دانگ زد شیخ اشارت کرد خادم را بسر که برو آن جمله حلوا را بخر تا غریمان چون کان حلوا خورند یک زمان تلخ در من ننگرند در زمان خادم برون آمد بدر تا خرد او جمله حلوا زان پسر گفت او را حلوا به چند گفت کودک نیم دیناری و اند. گفت نه از صوفیان افزون مجو نیم دینارت دهم دیگر مگو. او طبق بنهادن در پیش شیخ. تو ببین اسرار سرندش شیخ. کرد شارت با غریمان کین نوال نک تبرک خوری دین را حلال چون طبق خالی شدان کودک ستد گفت دینارم بده ای باخرت شیخ گفتا از کجا آرم درم وام دارم می سوی عدم کودک از غم زد تبق را بر زمین ناله و گریه برآورد و هنین می گریست از غبن کودک های های کی مرا بشکسته بودی هر دو پای کاش کی من گرد گلخن گشتمی بر در این خانقه نگذشتمی صوفیان تبلخار الخار لقمه جو سجدلان و همچو گربه روی شو از غریب کودک آنجا خیر و شر گرد آمد گشت بر کودک هشر پیش شیخ آمد که ای شیخ درشت تو یقین دان که مرا استاد کشت گر ربم من پیش او دست تهی او مرا بکوشد اجازت میدهی وان غریمان هم به انکار و جهود رو به شیخ آورده که این باری چه بود مال ما خوردی مظالم میبری از چه بود این ظلم دیگر برسری سری دانماز دیگران کودک گریست شیخ دیده بست و دروا ننگریست شیخ فارغ از جفا و از خلاف در کشیده روی چون مه در لحاف با ازل خوش با عجل خوش شاد کام فارغ از تشنه او گفته خاص و آم آن که جان در روی او خندت چقند از ترش روی خلقش چگزند آن که جان بوسده حد بر چشم او کی خورد غم از فلک و از خشم او در شب محتاب مه را بر سماک از سگان و او او ایشان چباک سگ وظیفه خود بجا می آورد مه وظیفه خود برخ می گسترد کارک خود می گذارد هر کسی آب نگذارد صفا بحر خسی خس خسانه می رود بر روی آب، آب صافی می رود به ازدراب. مصطفی مهمی شکافت نیم شب، جاج می خواید زکینه بولهب. آن مسیحا مرده زنده می کند و آن جهود از خشم سبلت می کند. بانگسگ هرگز رسد در گوش ماه خاصه ماهی که بود خاص اله می خورد شاه بر لو جو تا سحر در سما از بانگ چغزان بی خبر هم شده توزه کودک دانگ چند همت شیخان سخا را کرد بند تا کسی ندهد به کودک هیچ چیز قوت پیران از این بیش است نیز شد نماز دیگر آمد خادمی یک طبق برکف ز پیش حاتمی صاحب مالی و حالی پیش پیر هدیه بفرستاد که از وی خبیگ خبیر چهارصد دینار بر گوشه طبق، نیم دینار دگر اندر ورق. خادم آمد شیخ را اکرام کرد. وان طبق بنهاد پیش شیخ فرد. چون طبق را از غطا وا کرد رو، خلق دیدندان کرامت را از او. آه افغان از همه، برخواست زود کیسر شیخان و شاهان این چه بود این چه سر است این چه سلطانی است باز ای خداوند خداوندان راز ما ندانستیم ما را عفو کن بس پراگنده که رفت از ما سخن ما که کورانه اصاها میزنیم لاجرم قندیلها را بشکنیم ما چو کرران ناشنیده یک خطاب هر زگویان از قیاس خود جواب ما ز موسا پند نگرفتیم کو گشت از انکار خزری زرد رو با چنان چشمی که بالا می شتافت نور چشمش آسمان را می شکافت کرده با چشمت تعصب موسیا از حماقت چشم موش آسیا شیخ فرمود آن همه گفتار و قال من بهل کردم شما را آن حلال سر این آن بود که از حق خواستم، لاجرم بنمود، راه راستم. گفتان دینار اگر چه اندک است، لیک موقوف غریو کودک است. تا نگرید کودک حلوه فروش، بهر رحمت در نمی آید جوش ای برادر، تفل تفل چشم توست، کام خود موقوف زاریدان درست، گر همه خواهی که آن خلعت رسد، پس بگیری تفل دیده بر جسد. ترسانیدن شخص زاهد را که کم گیری تا کور نشوی زاهد را گفت یار در عمل کم گیری تا چشم را ناید خلل گفت زاهد از دو بیرون نیست حال. چشم بیند یا نبیند آن جمال. گر ببیند نور حق خود چه غم است. در به حق دو دیده چه کم است. ور نخواهد دید حق را گو برو. این چونین چشم شقی گو کور شو غم مخور از دیده کان ایسا تو راست. چپ مراو تا بخشدد دو چشم راست. ایسی روح تو با تو حاضر است. نصرت از خا کو خوشناسر است. لیک بیگار تن پر استخوان، بردل ایسا منه تو هر زمان همچون ابله که اندر داستان ذکر او کردیم بحر راستان زندگی تن مجو از ایسیعت کام فرعونی مخوا از موسیعت بردل خود کم نه معاش ایش کم ناید تو بر درگاه باش این بدن خرگاه آمد روح را یا مثال کشتی مرنوح را ترک چون باشد بیابد خرگهه خاصه چون باشد عزیز درگهه برای تهیه این برنامه ها به نسخه های مختلف چاپی و سوتی مصنوی مراجعه شده است. سعی بر این بوده که بیشترین دقت در خاندن درست این کتاب بزرگ به کار گرفته شود. با این همه از شنوندگان می خواهیم برای هرچی بهتر شدن بازپخش این برنامه ها نظراتشان را با ما در میان بگذارند. نشانی ایمیل ما این است در bbc.co.uk برنامه مصنوی معنوی روی انواج بی, بی سی در بخش های نم ها، هر سی شنبه ساعت دو سی دقیقه شب به وقت افغانستان پخش می شود و شنبه ها در همان ساعت باز پخش می شود.